اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبی بعده اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلسله درسای دولت نبوی ادامه دو داره و ما شما در قسمت امنیت درس خلاص کردیم و دوباره تدابیر امنیتی و استراتژی دولت اسلامی در قسمت حفظ امنیت بیانات خدا داشتیم فعلا ما شما ان شاء الله در سای خود بیان میکنیم در مورد تمام او مسایلی که برگرفته از حالات و وضعیت داخل دولت نبوی است در دولت نبوی ما شما فقط تانستیم دو موضوع را تا فعلا بیان کنیم یک موضوع را بیان کردیم که تمام آیات و احادیثی که در مورد تاسیس دولت اسلامی در مدینه بود و در داری که رسول الله سلام در اونجا هجرت کرده بود خصیات او بیان را بیان کردیم امنیت بحث کردیم. و باره تدابیر امنیتی بحث کردیم بعضی مسائلی که مانده امروز ما و شما بالای موضوع اقتصاد بحث میکنیم و میخواهیم که از دید اقتصادی یک نوه نظراندازی در دولت اسلامی مدینه کنیم که دولت اسلامی مدینه از چه نوه حالت اقتصادی برخوردار بود نخست از همه ما میخواییم در درس یک عنوان مقدماتی بیان کنم و این درس شما پوره مقدمه در بار اقتصاد است در اقتصاد اقتصاد شما وقتی که میخواییم بحث کنیم میاییم از نقطه اساس اقتصاد اسلامی رو بحث میکنیم کنیم بحث چرا می میخواییم کمک وار زیاد بیانات رایه کنم و این است که اکثر کسا در این باب دوچار شبهات اشکال هستند اولی اشکالی که داریم اشکال ما از تمام برادرها و مهاجرین و انصار و خواهرها و اطفالی که در دا داخل سرزمین خلافت اسلامی زندگی میکنن اینا همیشه اشکالات وارد میکنن و یک نوع شکوه و شکایت میگن از حالت کنونی دولت اسلامی ما میخواهیم که در مقایسه بین دو دولت این دولت و خلافه علی منهج النبوه که رسول الله صلی الله علیه و سلام اولادن هذا و, و دولتی که در زمان فعلی است بین این ما شما مقارنه میکنیم و میخواهیم نشان بدیم که کدام دولت ها از نگاه اقتصادی قوی و زوراورتر و محکمتر است دوم بحث که از ما میخوایم که خود بحث اقتصاد از دیدگاه شریعت کنیم بعضی کسایی را شما میبینید وقتی که میگیم که اقتصاد اسلامی یا فکر میگن اقتصاد اسلامی هم مثل سایر اقتصاد توغید برخوردار از تمام خصوصیات باشه و مثل توقیدواره. باید از رای فریب و چل و سود و حرام و تمام طریقه ها به شکل از اشکال بیاین و اقتصاد خودم قبیب سازه و قبید کنن اشکال جواب میتونیم اشکال سیومی است که بعضی کسا میان و میگن که دولت اسلامی خلافت اسلامی چطور میتونه که در این حالت وجود داشته باشه و بقای حیات داشته باشه در حالتی که در, در وجود امریکا و در وجود کشورهای مثل اروپا در یک حالت یعنی امکان نداره که یک دولت احساس و پایش نهاده شود بدون از که یک حمایگر اقتصادی داشته باشه و حامیگار اقتصادی ازی یا امریکا باشه اکثر کسایی که در بین مسلمان ها این فریم میخورن که میگن کی پروژه امریکاست چرا به خاطر از این میگن که اقتصاد از چطور حمایت میشه و بعضی کسایی که ده این فریم خوردن فریب از یاره ما می که شکلشون جواب بحث کسایی که میایین بالای دولت اسلامی یعنی یعنی وارد میکنن و میخواین که دولت اسلامی متهم به داشتن رابطه با یک از کشورها مثل امریکا و سایرز کنن و پروژه نام بزرن بالایش خاطر از این میگن که دولت اسلامی ساخت آمریکا چطور میکن داره که در این حالت اقتصاد دولت اسلامی ارزاندام کنه ما در کل میخواین <متخل> که یک مقایسه این اقتصاد اسلامی و سایر اقتصادهای دنیا کنیم این درس ما دمی خلاصه میشه و بعد از اون بیانات میکنیم مثلا ما بعضی اشارات خرد ریزه از دولت نبوی میکنیم مثلا در دولت نبوی فقر دامنگیر همگی است یک فقر یعنی کشنده دامنگیر تمام اقشار جامعه است از کلان از خرد از بزرگ از اکابر از بزرگها و از خرد همگی مثلا ما مثال داده میدانیم علی رضی الله عنه که دامات رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و سلم است و د اکثر خلافت اسلامی قاضی است و بالاخره از خلفای راشد است از چهار نزدیکترین دوستای رسول الله صلی اللہ علیه و سلم هست. با رسول الله رشته نسبی هم دارد بخاطر یک وقت رفع کرسنگی با یهودی مزدور کاری میکنند مثلا فاطمه رضی الله عنها از یکی سی زنهایی است که بهترین زنهای تاریخ اسلام هستند از زمان آدم علیه و تا به قیام قیامت و دختر رسول الله صلی اللہ علیه و سلم و حسن, و حسن و حسین رضی اللہ عنهم یا بچه های علی ردیوان حسن و نواسای رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره محبت رسول الله صلی با حسن و حسین روایت بسیار زیاد وجود داره اینا از گرسنگی گریه میکنن ابو هریره رضی الله تعالی عنه یکی از کلانترین ترین راویای حدیث است از جمله فقهای صحابه است از بزرگای صحابه است از نزدیکی رسول الله صلی الله علیه و سلم است اینا در روایت میگه که مردم در قسمت شانه و فکر میگن که ما دیوانه ولی ما دیوانه نبودم در حالت کفتادگی بودم حالت دلالت به این میکرد که ما گشنه بودم و از گوشنگی به حالت نشسته بودم و زمانی در سیل سیل میکنیم که جعفر را دیران از خانه خریطه روغانه یا خریطه سودا را میاره و این خریطه اینا چیر میکنن و خارطره میلسن د بین از کدام قسمت روحانی یا چیدگی باشه که خورده شود این زمانی است که سال هفتم هجری است تا سال هفتم هجری به این سویه مشکلات د بین خلافت اسلامی وجود داره که دلیل ما چطور میگیم سال هفتم هجری به خاطر از که جعفر رضی الله زمانی که دا وقتی که خیبر فتح شد و خیبر در سال 7 هجری فتح شد و ابوهریره ردیان حک از در سال 7 هجری اسلام آورده یعنی yani 7 سال بعد از تاسیس دولت اسلامی در دا دارمدینه به این اندازه گرسنگی وجود داره که اکابر بزرگای خلافت اسلامی خلطه روغن میلسن به خاطر اگه گداو کنم چیزی مانده در این خاطر ما کده کردیم گردیم اشاره‌ای بود که تا 7 سال در دولت اسلامی فقر وجود داشته یک مشکلی که اکثر umat اسلامی امروز دارن مشکلشان است که فکر میکنن که اگر اقتصاد باشه و همه چیز منظم باشه مثلا اکثر کسا را ما میبینیم میگن فعلا وقت تاسیس دولت اسلامی و جهاد نیست چرا به خاطر اینکه اقتصاد نداریم به متم نداریم تیارا نداریم درون نداریم جد نداریم مثلا ام قنابل یا مدارا به امها نداریم با می دلیل ما شما با جهاد نکنیم استاد شیم تبلیغی شیم یا بعضی بیانات خرد رضا کنیم اکثر ما مرتض شیم نعوذ بالله شما چه کنی رسول الله صلی الله علیه و سلام از, از, از بابت دیدن افسول متواتر د بین دولت اسلامي بن اندازه فقر است اندازه فقر است که حتی اطفال گريمه ګنن و بزرگای خلافت نان خوردن نمیافند بعض کسایی دیګی کی میایند دلایله دې را پیش میکنن باز ما اسکاری و بابې عسکری او ما بعض ګپ میزنیم د باره کثرت بعضی کثار کشور فعالیت داره بیش از میلیونها نفر پیرو داره انوسه هم خلافت تاسیس نمیکدند به خاطر چی به خاطر دې میګوفت کی ما اگر خلافت تاسیس کنیم امریکا صوحت به شما پزوت میگیره ترڅوسه کوین که رو زمین الله گرفتن ولی لله الحمد ما و شما خلافت اسلامی رو تحسس می‌بینیم و درس مادی است که ما یک نوع فکرا و یک مفکری را در بین تمام امت اسلامی در عموم و برای مجاهدین دولت اسلامی در خصوص بردیم که اقتصاد مانعی نیست و به خاطر ما می‌خوایم بحث شریعت از دیدگاه اقتصاد کنیم اگر ما و شما بیایم تمام آیات را بیان کنیم هدف ما این است که ما آیات بیان کنیم و شکل ما او شما در کمی وقت میکار نمیتونیم حواله متم مثلا درباره ی یکی کی اعلی هر کسه بخوایه زنده میکنه و هر کسه بخایه میمیرونه و هر کسه بخوای رس میته به غیر حساب سوره علمران آیه 27 مثلا علای مطال تمام جنبنده های روی زمین وعده کرده که رزقشان به دوش اعلی مطال است سوره یود آیه 6 مثلا اعلی مطال میگه که هر کسه به خاطر به اندازه قدرش رسق داده شده سوره اسراء آیت سیوم سی علای مطال در رزق رسق سوره فاطر آیت دوهم رب العالمین در که بعضی کسار رزقشان گشاده و بعضی کسار تنگ میسازه در سوره زمر آیت پینجه م بعض بعضی کسار علای مطال از طرف آسمان رزق وعده شدگی میته سوره زاریات آیت بیست م علای مطال خودش رزاق از سوره زاریات آیت 58 دوم. علای مطال هر کسی که توکل کرده باشه بر برازو رزق میته سوره طلاق آیت 3 رب الالمین در کسایی که میگه که تقوی اختیار میکنن از جای برشان رزق میتک و حسابشم نمیکرده باشن سوره طلاق علای مطال برای های خود از آسمان رزق مثل باران ارسال میکنه سوره 9 آیت 11 هم. علای مطال به اموال موشمه و به ا یعنی از آسمان آب نازل میکنه سوره نوح آیه 12 و رب العالمین بر رضایت خود به هر کس که بخواهه رسم میته سوره دوها آیه پنجم شما سعی کنین به می که فکر میگین بالاخره یعنی هیچ گای الله رب العالمین ما شما رو به این امر نکرد که شما رزق کمایی کنین شما رزق طلب کنه ولی هرچی ما شما رو امر میکنه که عبادت کنین جهاد کنین قتال کنه نماز بخونین روزه میگیرین و مسئله رزق الله مثال ما خودش به عدد عادی است پس اینجا ما شما سر اقتصاد اسلامی گپ می‌زنیم اقتصاد اسلامی نه کپیتالیسم است و نه کمونیسم است و نه اقتصاد مختلط است یک اقتصادی است که با اساس احکام الهی در روی زمین به خاطر عدالت تاسیس میشه و عدالت بین مردم قائم میکنه پس به این مانا در اقتصاد اسلامی ما شما به این مفکوره هستیم که اقتصاد اسلامی در کل قحتی و فراوانی و رزق دادن زیاد کردن کم کردن گشاده روزی کردن، تنگ روزی کردن هم از جانب الله رب العالمین است و ما و شما در زمین استفاده از اسباب میکنیم، ما و شما به اسباب دسترسی میکنیم و الله رب العالمین که خاص برای ما و شما رسمی منابعی که از دولت اسلامی مثلا اقتصاد خاتمین میکنه، کلان منبع منبع غنیمتاست که در بین ها ما مال فایده داریم، مال غنیمت داریم و رکاز است و عین زمان بعد از اون باز ما و شما مثلا دیگه آید منبع آیداتی ما شما جزیه است که از جزیه میگیریم از کفار از کفار زمی و دیگه منبع آیداتی ما که از زکات است و این زمان انفاقات است و سایر اشیایی است که ما از طریق از او که اقتصاد خود قوی کنیم و اقتصاد ما وابسته به عوامر الله متعال است و الله رفع العالمین است کسایی که میخواین به ما مثلا به شکل از اشکال بیانات کنند که گویا ما از نگاه اقتصادی در ضعف اقتصادی قرار داریم در مشکلات اقتصادی قرار داریم به خاطر مشکلات اقتصادی ما باید فعالیت انجام ندیم جهاد نکونیم یورا ما برشون حواله میثیم که شما برین دوره که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام احزاب جمع شده بودن دو احزاب رسول الله صلی الله مس کدام حالت اقتصادی برخوردار بود چقدر دلار داشت چقدر طلا داشت و چقدر دیگر از الماس و از تل ذخیره داشت هیچ چیزی نه نظر رسول الله صلی الله زمان نبود تا شک مخود سنگ بسته میکدن و خندق میکدن و به خاطر دشمن چی میگرفتن آمدگی میگرفتن حال ما ما بر کسایی را میخوایم اشاره بتیم که میگن که ما توانمندی اقتصادی فعلا نداریم بیاییم محاسبه کنیم که اومت امروز پولدار است یا دیروز پولدار بود دیروز اصحاب که از به مدینه هجرت کردن به خاطر تاسیس دولت اسلامی اومدن از کدام اقتصاد برخوردار بودن همه دار و مداری که داشتن مکاتر کرده آمدن به مدینه و در مدینه با هیچ دستخالی دولت اسلامی رو تاسیس کردن و تا امروز ما شما ثمره اش در زمین میبینیم امروز به طور اوسط اسلامی بسیار پولدار داره ما میلیاردرها داریم ما اندازه پولدار در دا بین مسلمان ها داریم که اگه در دایره ارتداد و دایره دا دا کفر و دا دا دا دا دا دلالت و گمراهی دوچار نباشند یعنی از هر ناحیه اینا میتونن که خلافت اسلامی را به هر نوع اشکال کمک کنن مثلا یک مواصبه کوتاهی که یک بار ما در درس فکری کرده بودیم غوی بود که مثلا در دور اسلام آباد به مثال مثال صحبتیم یا کابل مثال زدیم در کابل در حدود 8 میلیون نفوس زندگی میکنن در 8 میلیون نفوس که در درون کابل زندگی میکنه ما می بینیم که تقریبا در حدود سه میلیون از یا خارج خود میکنن اگر روزانه یک رو پر اینا به پلاریش خود میزنن مصرف میکنن روزانه چقدر میشه 3 میلیون و ها دصد یک پلاریش چقدر است 8 رو پس نه 8 پامیش باشه نه و مثلا اگه ما ببینیم 321 تقریبا 21 میلیون پائسه افغانی در روز اینا ریشو خودا کلم میکنن امروزش این دیگه ما شما ببینیم که چقدر اینا کربا و رد از انرجیا و از جوس و از پپسی و کوک و فانتا استفاده میکنن در عدود یکونیم میلیارد و دو میلیارد اگر روز میشه دو میلیارد اینا اگر فقط ریش خدا به خاطر سنت دیلا کنن و واجب با واجب عمل کنن و از بحث خوراک خود یک کمک کاری بزنن 2 میلیارد افغانی دولت اسلامی از هر نو اقتصاد مقوی و قائم می سازه یعنی فامیده میشه که اینا میخوان که نه کار کنن و از طرف دیگه میخواین که طعنه وارد کنه اقتصاد دولت اسلامی قائم باشه ولی ما نشان میگیم که هیچ نو مشکل اقتصادی باذن الله تعالی ال رب العالمین ما راه ثابت قدم داشته باشه و ما رو محکم و استور داشته باشه بایست نمیشه که ما روی بگردانیم و از کلان هدفی که در زندگی ماست ما که همان و عقیده و جهاد است از روی بگردانیم ما انشاءالله مشکلاتی را که ما دا در سای انده انشاءالله بیان می کنیم بالای رسول الله صلی الله و علیه وسلم آمده که رسول الله صلی الله و علیه وسلم زری خود تو وقتی که فوت کردن به زمانت منده بود پیش یهود ما حالات را بیان می کنیم که مثلا ابو حرائره رضی بلال رضی و سایر اصحاب مثلا امام حسن و امام حسین امام علی رضی الله و هم از اینا یعنی سر مشکلات سخت و حالات بسیار وخیم اقتصادی را تیر کردند سنگر را تشکامل بسته کردند کردن و با کفار جنگ کردند ما به مو حالت جنگ میکنیم و به بالای متعال ایمان داریم که رب العالمین با ما وعده رزق کرده و رب العالمین با ما رسمی میرسانه و ما مکلف به هستیم که باید دین الله متعال کار کنیم و همکاری کنیم کسایی که ما یک مثال کتایی که پیشتر در این بیانا بیان کردیم که یعنی اگر یا کار کنند اقتصاد دولت اسلامی بسیار محکم است بسیار قایم است ولی اینا از این چشم پوشی میکنن و از یک طرف این چشم پوشی میکنن طرف دیگه بازمین بالای دولت اسلامی و بالای اقتصاد دولت اسلامی و بالای خود وجود دولت اسلامی میگنن تن وارد میکنن و دولت اسلامی را با تحمل میکنن که یک پروژه باشه ما در این خود هدف اساسی ما گفتیم که چهار هدف است یک هدف مامی است که ما میخواییم بگوییم که اقتصاد هیچ گنامانه بر ما نیست رب العالمین سر ما ارزانی نعمت ها کنه و نعمت های ما زیاد شوه باز هم ما عین کارو به خاطر تحکیم شریعت انجام میدیم و گلا رو ما امین مورد حالت بیاره که سنگار رو بدل خود بسته کنه و به خاطر دین الهی مطال مبارزه کنیم ما همین کارو انجام میدیم و به این خاطر گفتیم که در دا داخل دولت اسلامی وقتی که اقتصاد اسلامی پایه‌گذاری میشه تمام دروازه های حرام بسته میکنه هیچ نوع رای به خاطر آمدنی حرام وجود نداره در دولت اسلامی مثلا در اقتصادش غش وجود نداره داخل دولت اسلامی سود وجود نداره حرام وجود نداره کاربار حرام وجود نداره کارباری که از او شبهات است شبهات وجود نداره تمام راه های کسب حلال روزی وجود داره و pave la情況 همراه ما ده هر راخیه و ده هر را کمک میکنه و ما بازم بیان کردیم که منابع اقتصادی دولت اسلامی کسب منابع اصلیش غنیمت بعد از غنیمت مثلا منابع مثل مهادن و مثل رکازو مثل از اهل ذمه یا از زمیها ها پول جزیه است بمیشه که خراج است اکثر قسمت زیادش غنیمت است و به این خاطر الله رب العالمین بر مسلمان ها رزق در تحت سایه شمشیر تحت سایه نیزه قرار داده و به می خاطر ما مکلف به جهاد هستیم و اللہ رب العالمین گفت شما جهاد کنه در حدیث صحیح که رسول الله سوال الله و علیه که هر کسی بخاطر فی سبیل الله از خانه خود بیرون شوه وعده الله متعال است که ای را مرمی میخوره الله رب بلالامی را شهید میکنه و اگر حیات من با غنیمت های بسیار زیاد پس به خانش برمیکردانه دیگه به این خاطر وعده الله متعال است روزی و رزق دولت اسلامی به وعده الله عز وجل است و در پایین ما ان از سایه نیزه و شمشیر با اذن الله متعال ما غنیمت که حلال ترین رزقه به ما قرار داده و رسول الله صلی الله علیه و میگفت که یکی از چیزهایی که بر ما اعلی متعال داده و برای انبیاء قبلی من نداده بود تویی است که برای ما غنیمت حلال کرده و از حلال ترین رزق های زمین چی مال غنیمت است و رزقی است که از غنیمت بدست میاد دیگه به خاطر ما که مقارنه عمومی را ان شاء الله درسو ادامه بتیم و مقارنه کنیم ببینیم که هنوز هم ما از هر نگاه نسبت به او مقوی هستیم و در بحث گفتیم که دو مردم ما هدف قرار میتیم یک هدف ما کسایی هستند داخل دولت سلامی زندگی میکنن و از حالات شاکی هستن ما میخواهیم که های یارا بر حدیث های رسول الله صلی الله علیه و جواب و بعضی کسایی که از بیرون بالای میکنن می خواهیم که شکوه های زیاره از حالت کرنی خود جواب بگوییم و ما حضیج بونه ملامت انشاءالله حراس نداریم و به خاطر همی هدفی که اللہی مطالعه ما را خلق کرده عبادت است همی را ادامه میتیم یا رب العالمین ما را شهادت میتن یا رب العالمین دمی فتحات میتن و در هر دویزی انشاءالله پیروزی و کامیابی مومنین نهفته است دمی قسمت در سوال ما شما به و خلاصه درس ها گفتیم که رد شبهات در اقتصاد بود و آیاتی که در رزق و در روزی بود بر مومنا تذکره کردیم و انشاءالله در یک درس باز تفصیلن بالای آیات بحث میکنیم و تمام مسائل بیان میکنیم بارک الله لنا و لكم پر قرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالايات و الحکیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله و رحمت الله و برکات لیکم و, و برکات